مصنوی معنوی مولوی برنامه 165 جامب ادامه داستان روان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از ودا کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت ودا وصیت را. ذکر استثناء و هزم ملتوی گفته شد در ابتدای مصنوی. صد بر هست، جز یک باب نیست صد جهت را قصت جز مهراب نیست این طرق را مخلصش یک خانه است این هزاران سنبل از یک دانه است گونه گونه خوردنی ها صد هزار جمله یک چیز است اندر اعتبار از یکی چون سیر گشتی تو تمام سرد شد ان در دلت پنجه تعام در مجاعت پس تو احول دیده ای که یکی را صد هزاران دیده ای. گفته بودیم از سقام آن کنیز و از طبیبان و خسور فهم نیز. کان تبیبان همچو اسب بی ازار غافل و بی بهره بودند از سوار. کامشان پر زخم از قره لگام سمشان مجروح از تحویل گام. ناشده واقف که نک بر پشت ما رایز چست است استادین ما نیست سرگردانی ما زین لگام جز ز تصریف سوار دوست کام ما پی گل سوی بستانها شده گل نموده آن و آن خاره بود. هیچشان این نیک که گویند از خرد، برگلوی ما کمی کوبد لگد. آن طبیبان آنچنان بنده سبب، گشتند از مکر یزدان محتجب. گربه بندی در ستبل گاو نر، بازیابی در مقام گاو خر. از خری باشد تغافل خفتبار که نجوی تا کی است آن خفیه کار. خود نگفته که این مبدل تا کی است. نیست پیدا او مگر افلاکی است. تیر سوی راست پر ای. سوی چپ رفته است تیرت دیده ای. سوی آهوی به سید تاختی، خیش را تو سید خوک ساختی، در پی سود دویده، بهر کبس، نارسیده سود افتاده به حبس چاها کنده برای دیگران خیش را دیده، فتاده اندران در سبب چون بی مرادت کرد رب پس چرا بد زن نگردی در سبب بس کسی از مکسب خاقان شده دیگری زن مکسبه آریان شده بس کس از عقد زنان قارون شده، بس کس از عقد زنان مدیون شده، پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بروی کم کنی بهتر بود، ور سبب گیری نگیری هم دلیر، که بسافت هاست پنهانش مزیر. سر استثناست این حزم و حضر، زان که خر را بز نماید این قدر. آن که چشمش بست گرچه گربز است، زهولی اندر دوچشمش خر بز است. چون مقلب حق بود ابسار را که بگرداند دل و افکار را. چاه را تو خانه بینی لطیف، دام را تو دانه بینی ظریف. این تصفصد نیست، تقلیب خداست. می نماید که حقیقتها کجاست. آنکه انکار، حقایق می کند، جملگی او بر خیال می تند، او نمی گوید که حسبان خیال هم خیالی باشد. چشمی به ما. رفتن پسران سلطان به حکم آنکه که الانسان و ما منعه ما بندگی خیش نمودی مولیکن خوی تو بنده ندانست خریدن به سوی آن قلعه ممنوعن آن همه وسیعتها و اندرزهای پدر را زیر پانه تا در چاه بلا افتادند و می گفتند ایشان را نفوس لوامه علم یعتکم نزیرون ایشان می گفتند گریان و پشایمان لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیره این سخن پایان ندارد، آن فریق برگرفتند از پای آن درش طریق بر درخت گندم منها زدند از طویل مخلصان بیرون شدند چون شدند از من و نهیش گرمتر، سوی آن قلعه برآوردند سر بر ستیز قول شاه مجتبا تا بقلعه قلعه صبرسوز هوشروبا، آمدند از رغم عقل پند توز در شب تاریک برگشته زروز اندران قلعه خوش ذات و سور پنج در در بهر و پنج سوی بر پنج زان چون حس بسوی رنگ و بو پنج زان چون حس باطن راز جو زان هزاران صورت و نقش و نگار می شدند از سو سو خوش بی قرار. زین قده های سوار کم باش مست تا نگردی و بط و بتپرست از قده های سوار بگذر مئیست باده در جام است لیک از جام نیست سوی باده بخش بگشا پهن فم چون رسد باده نیاید جام کم آدم معنی دلبندم بندم به ترک قش و صورت گندم بگوی چون که ریگ آرد شد بحر خلیل دان که معزول است گندم ای نبیل صورت از بی صورت آید در وجود همچنان که از آتش زادست دود کمترین عیبه مصور در خسال چون پیاپی بینیش آید ملال حیرت مَس آردت بی صورتی گون آلت از بی بیز بی دست دستها بافت همه جان جان سازد مصور آدمی. آنچنانک اندر دل از هجر و سال می شود بافیده گوناگون خیال. هیچ ماند این موثر با اثر. هیچ ماند بانگو و نوحه با زرر. نوحه را صورت، زرر بی صورت است، دست خوایند از ضرر کش است دست. این مثل نالایق است ای مستدل. حیله تفهیم را جهد المقل. سنه ابی صورت بکارد صورته. تن بروید با حواس و آلته. تا چه صورت باشدان بر وفق خود اندر آرد جسم را در نیک و بد صورت نعمت بود شاکر شود صورت مهلت بود صابر شود صورت رحم بود بالان شود صورت زخم بود نالان شود صورت شهر بود، گیرد سفر. سورت تیر بود، گیرد سپر. سورت خوبان بود، عشرت کند. سورت غیب بود، خلوت کند. سورت محتاجی آرد سوی کسب. صورت بازووری آرد بغسب این زهد و اندازه ها باشد برون دائی فعل از خیال گونگون به نهایت کیش ها و پیش ها جملة زل صورت اندیشهها. بر لب بام ایستاده قوم خش هر یکی را بر زمین بین سایش صورت فکر است بر بام مشید وان عمل چون سایه بر ارکان پدید فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک در تأثیر و وصلت دو بهام آن سوار در بزم که جام خوشی فایده او بیخودی و بهوشیست بی بی صورت مرد و زن و لعب و جما فایدهش هوشی وقت بقا صورت نان و نمک که نعمت است، فایدهش آن قوت بی صورت است. در مساف آن صورت تیغ و سپر، فایدهش بی صورتی یعنی زفر. مدرسه و تعلیق و صورتهای بی، چون بدانش متصل شد، گشت تی. این سوار چون بنده بی سورت اند. پس چرا در نفی صاحب نیمت اند؟ این سوار دارد ز بی وجود، چیست پس بر موجد خیشش جهود؟ خود از او یابد ظهور انکار او، نیست غیر عکس خود انکار او. صورت دیوار و سقف هر مکان، سایه اندیشه معمار دان. گرچه خود اندر محل افتکار، نیست سنگ و چوب و خشت آشکار. فائل مطلق یقین بی سورت است. سورت اندر دست او چون آلت است، گهگه گه آن بی صورت از کتم آدم مرسور را رو نماید از کرم. تا مدد گیرد از او هر صورته، از کمال و از جمال و قدرته. باز بی صورت چوپنهان کرد رو، آمدند از بحر کد در رنگ و بو. صورت از صورت دیگر کمال گر بجوید جوید عین زلال پس چه ارزه می کنی ای بی گوهر احتیاج خود و محتاج دیگر. چون سوار بنده است بریزدان مگو زن مبر صورت و تشبیهش مجو در تزرع و جوی و در افنای خیش، کس تفکر جستوار ناید بپیش. ورز غیر صورتت نبود فره صورت کان بی توزاید در توبه. صورت شهر که آنجا می ذوق زوق بی صورت کشیدت ای روی. پس به معنا می تا لا مکان که خوشی غیر مکان است و زمان صورت یاره که سوی او شوی از برای مونسیش می روی پس به معنا سوی بی صورت شدی گرچ زن مقصود غافل آمدی پس حقیقت حق بود معبود کل، کس پی زوق است سیران سبول لیک بعض روسوی دم کردند، گرچه سر اصل است سر گم کردند. لیک آن سر پیش این زالان گم می دهد داد سری از راه دم، آن ز سر می سر آن داد، این زه دم، قوم دیگر پا و سر کردند گم. چونکه که گم شد جمله جمله یافتند، از کم آمد سوی کل بشتافتند. دیدن ایشان در قصر این قلعه ذات السور نقش روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر و در فتنه افتادن و تفحص کردن که این صورت کیست این سخن پایان ندارد آن را صورتی دیدند با حسن و شکوه. خوب تر زان دیده بودند آن فریق. لیکزین رفتند در بحر عمیق زان که افیونشان در این کاسه رسید. کاسه ها محسوس و افیون ناپدید. کرد فعل خیش قلعه حشربا هر را انداخت در چاه بلا تیر غمزه دخت دل را بی کمان الامان و الامان ای بی امان قرنها را صورت سنگین بسخت آتش در دینو دلشان برفروخت چون که او جانی بود خود چون بود فتنش هر لحظه دیگرگون بود عشق صورت در دل شهزادگان چون خلش میکرد مانند سنان عشق میبارید هر یک همچو میغ دست میخواهید و می گفت ای دریغ ما کنون دیدیم شهز آغاز دید چند من سوگند داد آن بی ندید را حق بسیار است زان که خبر کردند از پایان من کانچه میکاری نروید جز که خار وین طرف پری نیابی زو متار تاخم از من بر که تا رعی دهد با پر من پر که تیر آن سو تو ندانی واجبی آنو هست هم تو گویی آخر آن واجب بوده است او تو است اما نه این تو، آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. توی آخر سوی توی اولت است از بحر تنبه و سلت. توی تو در دیگری آمد دفین. من غلام مرد خود چونین آن چه در آینه می بیند جوان پیرن در خشت بیند پیش از آن زمر شاه خش بیرون آمدیم با انایات پدر یاغی شدیم سل دانستیم قول شاه را وان انایت های بی اشباه را نک در افتادیم در خندق همه کشته و خسته بلا بی ملحمه تکیه بر عقل خود و فرهنگ خیش بودمان تا این بلا آمد به پیش بی مرض دیدیم خیش و بی زرق آنچنان که خیش را بیمار دق علت پنهان کنون شد آشکار بعد از آن که بند گشتیم و شکار سایه رهبر بهست از ذکر حق یک قناعت به سد لوت و طبق چشم بینا بهتر از سهسد عصا چشم بشناسد گوهر را از حسا در تفحص آمدند از اندحان صورت که بود عجب این در جهان بعد بسیاری تفحص در مسیر کشف کرد آن راز را شیخ بسیر. نز طریق گوش بل از وحی هوش رازها بود پیش او بیروی پوش. گفت نقش رشک پروین است این صورت شهزاده چین است این همچو جان و چون جنین پنهانست او. در مکتم پرده و ایبانست او. سوی او نه مرد ره دارد نه زن. شاه پنهان کرد او را از فتن. غیرت دارد ملک بر نام او. که نپرد مرغ هم بر بام او. وای آن دل کش چنین سودا فتاد، هیچ کس را این چونین سودا مباد. این سزای آن که تخم جل کاشت، و نصیحت را کساد و سر داشت. اعتمادی کرد بر تدبیر خیش که برم من کار خود با عقل پیش. نیم زر را زن انایت به که ز تدبیر خرد سی رسد. ترک مکر خیشتن گیر ای امیر پا بکش پیش عنایت خوش بمیر این به قدر هیلۀی معدود نیست زینحیل تا تو نمیری سود نیست